به نام شهرناز و هرنواز دو لفاصل نیمه برش برد با همتره خودیم گرفت در روایت ها به دو صورت مختلف آمده گروهی گفتن اینا دختران جمشید بودن حتی در شاهنامه هم دختر هم خواهر تو های مختلف بوده که مثلا جمشید داروند دو خواهر بودن نمیزه دو دختر بودن ریجی هم چاشم میشه خیلی چود اول بعضی جه ها نوشتن اینا دختران جمشید بودن. و از جهان نوشتن اینا جمشید نظر به که در افتانه باستانی جمشید اصلا معنی جم این است طفل تو همین و بعد هم در قدیم ترین قصه گفتش درستی با یک دختر به دنیا آمده بنده به نظرم میاد که اینا خواهران جمشید باشه نه دختر اگه کنار گرفت حضرته علت این هم که این مسئله رو میگه در سیدروسی در شاهنامه هست این هست که زن در قوایل مرد سالاری تالار مرکز خودتر و مرکز مشروعیت بوده و زهاج این زنها بوده شد به خودش برای اینکه که یه مشروعیتی برای خودش دست و میگه اینا بودن هزار سال زههای زندگی کرد اینا هم تو خونش بودن بعد چند نزدیدن اجازه بعد که فریدون و زهای چیره شد اول کاری که شد تو هرمسرا شهرناز و هرنواز را داشت آقا تو هرمسرای خودش را بزنی گرفت و اونوقت اون یکی از اینا یه پسر زایید چه او ایراجه یکشون هم دو تا پسر که سلم و که حال اینو بعد میرسیم البته پیش. الان خواستم اینو بگم که من به نظرم میاد دفتر با توجه و با افتانه های باستانی که وجود داشته خوهران جمشید باشه نه دختران جمشید علاوه از این جمشیدی رو که خودش رو میده با عره دونستش میکنن دخترش گرفتن مشروعیتی نمیاره ولی خوهرش رو گرفتن چون منصوب به پدرشه این ممکنه که مشروعیتی داره چیجا و حال اینا مطالبی که حالا بعد قایم رسید بر عوستا داستان اون فصلی هست حالا آقای دوست و جاوندم جا لوز کردن این جداغان هم چیز کردن آقای دکر مقدم استاد عزیز بنده داستان جمع ترجمه کردن و از کنم که جز به جز با لغتاشون همه اینا و از اوستا و مرتب کردن و بعد چاپ تاب بودن سالها پیش در جزبه هایی که اسم ایران کوده منتشر میشد در یکی از یکی از این را داستان جمع و این رو ایشون تکتیر کردن لطفم کردن یه نطفه من محبت کردن دوستانی که علاقمند باشن که عین اون مطلب رو داشته باشن و براشون جالب باشی که برگوداش جمشی رو چنان که هست کلمه به کلمه و با دقت تمام در عدد هست داشته باشن در اختیار میتونن دم آقای من سعجا فندید که ولی من خلاصه اون داستان اینجا فدمتون خواهم گفت و در اون داستان مطالبی هست که نیش بودونش در شانه های نیست الان من شروع مستم چون تا سنگ دقیقه وقت مونده هنوز بلی به پایان نمیرسه روایت عوستا در دوران جمشید سیری و سیماری و مرگ همه زنان و مردان مثل دختران و پسران 15 ساله جوان نو حیوانات هیوانات هم نمی مردن می هم گفته بود که احور آمزده به جمشید گفته که تو میخوای پیغمبر بشی یا میخوای پادشاه بشی؟ ای پیغمبریی میخوای تو رو بذارم برای پیغمبری و هدایت خلق؟ اگر تراکت بزید دریا و هفتاد کشتی که اشاره به مザهب و فرق گوناگون اسلامی است و ستایش میگه در میان این 70 کشتی یک کشتی میانه است که از همه بزرگتر زیباتر است و زیبا. دارن کشتی محمد و علی و اهل بیت اون نشستهن و هر کی از چشم داشته به اشتیاق باید بدین کشتی میانه دارد یعنی به مذهب تشیع ها است عکیون چه گونه ممکن است که کسی در بالا چند بیت در ستایش ابوبکر و عمر و عثمان بگوید و صرفا چند بیت فاخر بگوید تنها کسی بهش میرود که سوار کشتی تشیع شده باشد که در واقع عملا گفته است که هر کسی به کشتی مذهب دیگر در کشتی او غرق خواهد شد و روی بهشت ورثه‌گاری را نخواهد دید برای هر گونه ممکن است یک نفر شیعی مذهب که با این حرارت از حرفانیت مذهب خود سخن میگوید و کشتی مذاهب دیگر را قرضو میگیرد پیش از آن بگوید عمر کرد اسلام را آشکار و یا درباره عثمان بگوید خداوند شهر و خداوند دین آشکار است که با این چهار بیت همه نظم و منطق این قصه در هم میرود این یک سهم چار بیت مذکور خلاف عقیده مذهب دوست چه مذهب هم با اینکه من چه و هم که تشعیع بوده و اختلاف علت اختلاف او با محمود نیست بیش از هر چیز همین اختلاف مذهبی میگه که بو... کسانی که گفتن تردوسی این بیت ها را برای احترام به مذهب سلطان سلطان محمود گفته آیا محمود را تا این فایه عبله دانستن که کسی که نخست مذهب او را ستایش کند و سپس چند بیت پایینتر عملا بگوید حضرت سلطان تو بد مذهبید اگر بهش داری دست از مذهب خود بردارد به مصحب تشریع و دراری برای اینکه فردوسی را تا این از مردی خام گرفتن که نخست به خاطر احترام و مصحب سلطان مذهبی را که مصحب نبوده با قلوب به تمام به ستایت و سپس با حرارت از مذهب خود دفاع کند بیر از همه این حرفا میگه که در بیت نخستین از این چهار بیت خورشید بعد از رسولان مح طابید وکس رو به میگه که در نخستین از این مضمون که خورشید پس از رسولان بزرگ بر هیچ کسی بهتر از او نتابید سخنی معع کرد الب این, این, این حدیث ها اون تا حدیثی که مشی قبول داری این این حث ندارم بود میگه و در هر حال در شاهنامه که خورشید از تصویرهای مهم شعریست مانندام بر نمی خورید. همچنین مضمون بیت دوپم که عمر اسلام به آشکار کرد حتی از دهان یک سن مذهب هم مبالغه کفرامی زد اما پنجام دیگه اصلا باید تکاره میگه کاربرد واژه عربی بعد در بیت نخستی که نه یک اصطلاح نه یک اصطلاح معتبی نه یک واژه نادرست ولی جز در این محل در هیچ کجای شاهنامه به کار در حالی که برابر فارسی آن پس و سپس و عزین پس و غیره بیش از هزار بار در شانه آمده است دلیل مهم میداره الحاقی بودن این قطعه است. همین کلمه بعد گذشته از این برای اینکه اگر جزء وکابولر اون روز بود همین یه رفعه در تا هم شانه که معلوم شد اون روز جزء واجهان زبان فارسی اصلا نبوده و مدتی گذشته تا مردم بعد روز وارد زفون کردم و اون شاهدی چهار ساخته دست روزی بوده که این بعد رایت شده بوده بعد میگه گذشته از این، در این چهار بایت دو بار هم واژه عربی رسول به کار رفته است و حالی که همه شاهنامون شاید این واژه یک یا دو بار آمده باشد و فیروسی همه جا پیانبر و پیغمبر و فرستاده و فرسته به کار بوده است برای نمونه در همین یک, یک قطعه که در ستایش مذهب خود گفته دو بار بیتها هفت و نه واژه پیغمبر را به کار بردید و بر طبق ضبط نظامی عروضی در چهار مقاله در بیت چهارده نیز به جای محمد ینبر دارد آیا واقعا جای تحمل نیست که همین یک قطعه در بیتهایی که در اصالت آنها جای گمانی نیست دو یا سه بار پیغمبر پیامبر گفته باشد ولی تنها در آن چهار بیت که به دلایل دیگر هم مشکوکن دو بار واژه عربی رسول را به کار برده باشد آیا واقعا جای تحمل نیست که در چهاناما چند هزار بار پس و سه پس و از این پس و از آن پس و آنگاه و آنگاه و آنگاهی و, و خیره بگوید و یک بار بعد نگوید ولی در این چابه که به دلایل دیگر هم مشکول بعد به کار بیاره ولی زمین کنه از این مسئله خیلی داره و خیلی کتاب است من حالا معذرت میخوام که وقت دوستانو با خوندن این که برای اینکه برای اینکه پایوم مایه کتاب رو در حقیقت بدونین و توجه داشته باشین که اون من درز می که این کتاب خوب است و قابل استفاده تو اینا از چه نوع داری؟ در برای سطحش، سطح این کتاب خیلی از آفرین فردوسی بالا سره برای اینکه آفرین فردوسی رو ما نوشته بودیم اصلاً برای جوانان و آشنا شدن تا حدید دوم سواد پارتی دارن با شاهنامه فردوسی هیچ کار تحقیق و دقیقت و این مسائل در اونجا اصلا نظر ردشت و بنده های دیگری که دارن برای شاهنامه فردوسی که در خطه علمی و دقت شده درش هیچ وقت منتشر نکردم و اولین کهی که مندشر شده همین شاهنامه فرنگ آمه هست که اینجای هر تا از اون یاد از چند هزار یاد داشته که دارم چار اینجا محصف شده بعد باید ملازه ولی این, این کتاب همسی که کردم سعتش بالا و مطالب حسابی داره بابا هم در حقیقت عمرش تفلک داشته روی این کار بس. اسم کتاب گل رنج های پوهن. خیلی با فروتانی هم گفته که فردوسی یه مثلا ای داره گل رنج های کوهن گشته خار میگه من هم اینا را انجای نیست که یه وقتی گل بوده حالا از خار نیست من نمیخواستم اینا منتشر کنم ولی چسبیدن که هزن چند تا مقالش منتشر کنم من خواهم بهش که باقی مقالاتم حتما به صورت جلد دوم این منتشر کن به دلیل این که کسی اگر بخواد مقاله های تو رو بینه نمیتونه هفتاد تا مجله این و اون جهان پزشکی یا هم جهان نو مجلبه دیمور برید ببینه که اون چطور تو چیز کنه از آن که چنین خوصتی هست حتما باقی مقاله مقالاتم به صورت مجموعه دردیه و این فکر اصلا انداز فکر درست بینید و هر حال گل رنج های کوهن نسو شو حالا بریم سر کار خودم تا کجا خونده بودیم دیاری جن تیر نو که نگارم بیا نوت جاینه به دیوش کسیم همه کنم که من مثل اینکه که رو در عویستا داستانشو نصف به شو گفت نصف مربوط به کش آمده نیزن نصف دیگرش یعنی ور جمع کرد رو عرض نکرد باستان طوفان توفان نو امید برمیگه آی نو مجددن اردام نکنن افضانه که در سر و سر نقاط دنیا تقریبا نزاید بشه و جاپنی دارن اینو چینی ها دارن چه های دیگه دارن ظاهرن اون که به صورت قصه نو متبل شده مال توغیان شدت الارض یعنی توغیان روت دجلو دجله که کرخه و کارون پیش میفهید و من نمیدونم رفقا به ایلام آمدن در دشت همبار رو دیدن یا ندیدن. ا خاک هند، افغانستان که سر هم یکیه از ساعت از لر دریا تا هزار مایل که بری رو به شمال دیویس و فراتر استفاده استفاقیه یعنی مثل کرف دست واقعا برنامه او تراز بکنه انقدر نمیشه سا بعدم یک دفعه چیم خوردگی عظیم هیمالای ها از با اون ترتیبات که یه دفعه میره بالا در نفیجه کو هم که هیمالای بزرگترین کوه بلندترین کوه دنیا پر برد برد بر بر زیاد میگیره و این دفعه ها آب میشه را میوفیده های پر آب شبه غاره هند و دستند و نمیدونم گنگ و پنجاب و رودخونه های دیگه برند نه همه از همون جو وقتی این آب ترازیر میشه خیلی جریان آب اولا آهستر واقعا این رودخونه رو طور شما رود سند اصلا رد میشید حفظ میکنی که اصلا این را میره اصلا آب که دریاچی میمکنی حرکت نداره حتی رود سند از فاریز هم که لابا دفع ها بیشتر از رود سند دیدن همین جوره یا تندس لندن این حرکت ندارید وقتی آب در اینجا ها میکنه قیام می کنه سرعت که ندارید یواش یواش یواش یواش این آب می کم کم میاد یه خود میزنه کنار این لبه کم کم یه بیشتر میشه. یا <سؤال> خودش <سؤال> که بالاتر هم آخست بیاد تو خونه تو نشستی جوانی که آب من از در تو سلام علیک و علیکم این جرم بعد میگیره میکره این من اندیارد هم که هیچ دروازه نیست و سنت که تو کرده بود مثلا تا ماهی قسمت ای دریا بود ماهیا و چه گذشت و دنبرگابیه تو که از منم همین الان که آفرویی شد بود بعد زمینه اونجا به اعلانتی که آب بیاده زنجاب شده یعنی آب چیز نمیکنه آبو فرو نمیبره ما زمینای شنی داریم منبکتی که صد هزار سال آفتابش شدید خورده و آبم نرشته هرچی بزن فرو بیرانیم اونجا که اینجور نیست که اونجا گاهی آب از, از زمین زمین صاف آب بیزنه بیرون اونجا هیچی برامین بله کنم که ما خانه فرهنگ داشتیم در راستندی آب بارون آمده بود و پرشده بود بعد صبح بخواستیم بریم حیات آب گرسد باقشه بود و باقشه بود, و بود. یه رارو بود آب آن راست بعد یه مسئول خانه فرهنگی داشتیم که یه خورده هم از خودمون بود منطقه کمی جلو بود با یه فکری بسنیم این آب اینجا رو بکشیم تخلیه بکنیم کجه تخلیه کنیم آبایی خواهی دفعه هر جمعه نظر تو میال پاهمیم بایی نمیدیم مرد رو سابشن تو چشک آمگونه ام تو آبش کجه بخواه بریزی اصلا عقمش نمیرسی سی خوب آبایی نمیشه که همه جا همینه آب مونده به هر جه هست میاد میاد تو خونه شما کیسه برنجه زیر زمین بدتر از رو زمین دیگه پالی، پالی هیچه هر دیگه میاد اون تو میمونه و بعد باید تمام چیز رو بذارین رو پایه بلند تا که ای آب مهمون سرکار باشه کدان اون وقت فقط تو خونه شما که نمیاد همه جا میره، تو سوراخ مهاره میره مهاره هم میره، میره بالا درخ مردم تو هنگ پاکستان، مهاره این اتفاق افتاده یه وقتی وقت طبیان پنجاب بودم و صفیر ما نوشته بود به سرعت و با هوافه ما فوری نمیدنم چند میلیون فیروم ضد زهرمان از فیسارک و گفت بود بسازن، سریعه چیم دارن، بفستن، باقیدم بسازن، بفستن باره که مردم مدبخ می‌گفتن بالای درخ و مار می‌گفتن اینه که این طوفان دیگه هیچی رو اصلا باقی نمی‌ذاره و هیچ آب که اومد معلوم نیست که ای بره داری در نواهی کوهستانی سیلایی که ما وچه تهران تیرون و تهران اینجا شاهدش از نیم در ضرط پنگ دقیقه مثلا تقیام میکنه و گل و لا و یه چیز قلیز وحشتناکی میاد و گاب و گوزفند و مار و درخت و هم دیدم دامان بودم یه درخت گردود به این گندگی اولا اینو چنان از اون کنار زمین چند رفت کاتی چیز که مثل اینه که مثلا فرد فرمه که شما یه دونه چور کبری تحصیلی گل بکیسیم افتاد توی چیز؟ من نگاه میکردم افتاد توی رودخونه ده قدم بیشتر نرفته بود این درخت با اون شاخو و برگنه تدبیل شده چه چور خوش یعنی در واقعا از داره دم ادخید خیلی دراحت بودم دید داشت کاملا میدید این کلتون این سنگ رو برخورد و این پیس تمام از این باید بعدم میره نیم ساعت ادم هیچی نیست هرکی کشته شده شده هرکی هم نشده نشده هرچی خسارات زده زده تحکیر تمام که ملی ولی در نواحی دشت خیلی توگیان وحشتناستره و هر سال این کار رو می کنن تعریف می کنه یکی کسی رفت این جایی بیگر یک سن تعریف می کنه یکی اینکه دانشان پاکستانی پیغوطانوسین راشدی که وقتی این و زهکشی و با تدبیرای مختلف و کانالیزه کردن آب آب تاهل از زیر برودن 10 متر. و اینطور لهیت کشی کرد. گوش یکی دیگه شد. کم کم آب تاهل از از ده متر شد 9 متر، 9 متر 8 متر، 8 متر 7 متر، 7 متر 6 متر. نون که من اونجا بودم که 51 و 52 و پنجا سالای خودمون بود هر سال یه مقداری از زمین و پاکستان کچل میشد یعنی این آبا میری میریخ میمد بیرون رو زمین میموند بعد بخار میشد گل و لای و رسوب املاق میموند زمین شور میشد و دیگه قابل کشن هم جمعیت هم از این بر فصل و میشد زمین و تم کم شد بعدم این رو بسیار بشماره که زیتشی بکنن و زمین شورشی این بکنم هر حال ارز کنم که ظاهرم افتانه توفانه از اتنو هم یه چنین یه چنین حادثهی بوده از این که در شهر عرب و در نواهی بین نهرین و اینجاها اتفاق داده و در هماسه گیلگمش هم اشاره به این تیزی شده یعنی وجود داشته منطقه خوب در چی عاصفان های ماردینا صورت طوفانی چ خودش میاد. هر کدم در چین و ژاپن و اینجا هم هست، مثلا در همه جا استان های طوفان هست و در ایران تن واراندگی نیست که اصطلاح مصیبت طوفان اون صورت باشه جز در شمال در ایران رشته مربوط به طوفان برد و میگه که از آمازده به جمچیز خبر داد که احریمن قوای خودش رو تحچیز کرده و قرار است که سرما رو بر زنین مسلط کنه در زن هم به شما بگم که مثل اینکه که اون دفعه هم گفتم در جلسه که بسی صحبت میشه از جادو که حالا تو این به دقیقتر و مفصلتر با شواهد متعدد خواهدید ستون فقراتش نزول سرما اساس کار جادو تو شانده کنارش هم داره ولی اساس قضیه سرمان فرستانی سرما رو احریمانی میتونن با خودش هم که خوب بستر هستن قرار است که احریمان یه حملهی بکنه سرمان رو کنه برف بسیار خواهد آمد و تو باید یه باقی در زیر زمین بساز به نام ور در اصطلاح معروفه به ور جمع کرد جمع کرد یعنی جم ساخ و ساختن برم که ور ور جمعت معریض بعد اندازه های این رو میده که طولش چقدر باشه عرضش چقدر باشه پنجره چه جور داشته باشه از کجا نور بگیره چه بکنه؟ چه بکنه؟ بعد که حیوانات موضعر و مطلق ها داریم این این چیز نمیبری حیوانات مفیز رو از هر کدوم من چند جفت برید دونه دونه جزئیات ذکر شده که همین داستان جمع هم حتما هست من فرستاد نکردم می آکنم ودی در رو س دیده بودم و مرد گوش پشت و پوسی زدندان و نمیدونم آدم هم که خلاصه یه گذیم نشی که چه که میخوان باغذی بمونن که جانوران و که انسان موجودات صاف و صوفتر و و به اصطلاح با عرضشتر اینا باشن اینا رو بیارن اونجا و در اون باغ به سر ببرن تا وقتی که این طوفان و این حمله احلیمن موقع دسته فرید شد بعض جمسی نها میگوار ی آقایی که گویا مقیم سوده یک کتابی نوشته زبان تحقیق می‌کنه کار می‌کنه خیلی هم زبان خوبیه اسمش هم مصهار معلوم مر... یادم نیست کتاب درباره فلسفه و تحریباتی کرده در باب اینکه محل این ور اینا کجا بوده بچه آذربایجانیه و جزئیات نقاط آذربایجان به خاطر داره و می‌دونه که به از طریق سنتی گفتن که زردشت مال آذربایجان. از عرض ربایت این که مال هم هست هست و حقیقت این است که ما عوستایی رو نمیدونیم مال کدوم نایی ایران بوده حتی اسم این زبون نمیدونیم اون دفعه کردم که اسمش رو دانشمندان داشتن عوستایی درست مثل که زبون عربی به کلی از باییم بره فقط یه فندت بمونه قرآن این کسی نمیدونه اسم این زبون چیه که زبون, زبون قرآن. این سی همچی اسمیه لازی زبون خودش چه اسمی داشته ما خبر نده همچنین از پارسی باستانه ده. اونم فرنگیو بشت. در هر صورت او تحقیقی کرده و به یه جایی نشون میده میگه اینجا جایگاه برای جمع کرد و یکی هم هنگ افراسیاب اون کاری که افراسیاب بهش پناه برده بود که بعد گرفتاره اون هاو معابد میشه و میگیرنش رو دستگیر میکنن بالاخره میرانده سیزه و اعمالش میرسه او رو هم جاهشون اونجا نشون میده و شواهیدی میاره و داستانهایی که من کتاب تو انبوح کتابام هم, کتاب هم که متاسمان رو هم هم ریخته رفستم ندارم منزل کافی و بعدم به هم زدن نخلصه الان اگر پیدا کنم اون کتاب رو نوم و نشون رو تو براتون میارم و میشه که بگیم ولی یه چین شده. در حال یک داستان اون فصل دیگری هم که در شاهنامه اصلا نیست و در حوست آماده داستان ور جمع کرده که او هم در شاهنامه نیانه در ذهن اینجا این آقای دکتر خالطی بحث میکنه که بعضی ربایت ها هست بعضی قطعات الحاقی هست که گروه میگن که آقا این ربایت اصیله بله روایت ممکنه اصیل باشه برای اینکه یه ادعای روایت‌ها اصیلو فردوسی به دلایلی فرو گذاشته، اینا تو کتاب‌های دیگه ثبت شده از جاهای دیگه میرسه ولی اصالت روایت رابطی به اصالت سروده شدن وسیله فردوسی نداره. بنابراین های زیادی هست، مال اون روزگارم هست ولی شما در شاهنامه اینا رو پیدا نمی‌کنید. کما اینکه اون چرا راجع به جمشید من خدمتتون عرض کردم، در شاهنامه می حالا برمی گردیم به اون چه در شانه همه هرد چو گیتی تر آمد بران بیزبند راه همه خنده اون سوزمند اینجایی منازم می فهمونی که میگه جمشید به سر تنورسید می فهم در قوستا جمشید به سر شخصید به نام زویبنگهان جهان. هیچ رفتی به تحمولیسی دیدوند نداره ولی بله خب دیگه بعد هماسه ملی رفتی یه چیز میشه این برای خودش سیر تازه تصرفاتی میکنن و این صورت باید یه تبالی منطقی پیدا بکنه این هایست که جمشید رو پسر, پسر تحمولیس دانستن که بعد پدرش میشونه به تحصیل تو گیتی سلامات بران دیدوند جهان راه همه پنده او به سوگندرون شد در حد نه یا اومد بران روزگاران بس مثلوی نداره که کن انداره کنم گران ماه جمچید پرزند اوی کمر و یک دل پر از بود یک دل یعنی سمیمی و معتقل با منفنانا دل یک دله کن جد هم آنگه گله قرآن بر آن تخت فررخ بدر به رسم کیان بر سرش تعاجز کمر بسته با پر شاهنشاهی جهان گشته سرسا سر فرارهی باید چیزی نداره کمر بسته یک دل پر پنده اوی این کمر بسته هم به عنی کمر پادشای بستن هم به آماده بودن چون کمر بستن به عنی آماده بودن قرار واستی که برا فنده گویو زمانه برای سود از داوری یه معنی داوری دعو و مرافع میگه یک حرف به بگویم اجازت است ای نور دیده. سول بعد جنگ و داوری داوری به معنی دعوا و جنگ البته اون معنی که می دونید راجوش حرف این که زمان زمانه براسود از داوری یعنی گرفته به فرمان اون و مرغ و پری این یکی از نشانه هایی که بعد کنسید رو با سلیمان چیچ میکنه؟ قاطی میکنه برای اینکه او رو هم برای او هم یه چنین قطرتی نظر داشتن البسید نیسی که عرض کردم که سلیمان در کتاب مقدس یهود جز پاترانه و جز پیغمبران نیست و حکیم هست خداوند حکمت و او عرضانی داشته هست تو توفیق الحکیم نگیسندهی مثلی نمایشنامهی نوشته به نام سلیمان الحکیم حکمت داشته و در قرآن هم آمده است که باقید سلیمان الحکمه حکمت داشت. این در طورت هم آمده ولی جز پادشاهانه اصلا جز پیغمبرانی و خلعت پیغمبر، پیغمبری رو این اسلام و قرآن به دوش سلیمان اندار زمانه بر حصود از داوری به فرمان اودی، با و, و مرغ و پری و پری عرض کردم که اونطور اون احریمانی بوده ولی در ملی ما از اون حالت خارج میشه و حالت بله او رایی هلا اگه نمیگیری که نمیگیره، ولی به هر حال چیز میشه از اون حالات خیلی بد میاد دیرم جهان را فزوده به دو آب روی پروزان شده تخت شاهی به دوی منم گفت با فره ایزدی هم هم یه هم موبه این باز مسئله مهمی است. و میده که در آغاز پار چیز چیز به حکومت دین و دنیا در دست یک شخص و چیز عجیبتر اینه این ها مطالب که مثلا ما نمیتونیم باید من در دوری دکری اولگار مرموم و استاد هم اینو تر فرمودن و بعد فرمودن راجع بشه امام و شیعه که معمولیت الهی داره و از جانب خدا من میشه یعنی پریغمبر نخستین امام و عقید شیعت منصوب میکنه و اون امام هم جانشین خود تعییم میکنه و این انتخاب الهی امام پیشبای دین و دنیای مومنین و سر که قلم های مذهب شیعت تمام ها رو قاسد میدونه و سر این که خواهد صفوی از با اینکه خودشون مرشد صوفیه بودن چه بودن چه بودن از آخونده اجازه سلطنت میگرشتن و سر این که قاجا و اون ریختشون شاهر اشتراز بلند که اجازه سلطنت جو از شیخ جفر کاش بلغتا میگیری اصطلاح حقیقت نایب علمای دین مجلسی هم پاچهان سفظی رو به عنوان نایب خودش در حکومت منصوب میکرده از به تو بخش آخون رو بزردش این اعلتش این بود است این انصار دیمه دولت با هم آمیخته بوده از خدیم الایام و تا در ایران به خصوص در ایران به خصوص این همجور ادامه داشته یعنی اعتقاد به امامت موجب این بوده و این که وجوهات میگیرن بعد تعریف میکردن که مالیات ندین نمیدونم دولت آسفلت بکنه خیابونه خیلی خوبه اما شما مالیت بهش ندین نحرومه به اون بدین گیریم بدین به ما نه اصطلاق نشان این است که اون مشروعیت رو قائل نبودن برای اینکه سخومت حرف ام هست. این سابقه خیلی قدیم داریم این نظورهی چیست و گوی اگر درست یادم باشه از زن گفتاره گفتاره اگر یادم باشه جمشید وقتی که صحبت میکنه یعنی مناجات میکنه در غاه رامزده و از رامزده سخن میگه اونجا غاه رامزده از اون میپرسه که تو میخوای که من پیغنبری به تو بدم پریاست دینی مردم رو داشته باشی و مردم رو ارشاد بکنی و هدایت بکنی یا میخوای پاسچایی بکنی میگه که بالا من استعداد پیغنبری کردن ندارم ولی اینجا الان که حرف نیزنه ملازمی کنید که منم گفت فافره ی ایزادی هم هم شهریاری و هم موبشون موباد، بعد پت در پهلوی و در فارسی واسه هم پیتی به معنی سر و سرور و سالار و سید و مولار الان در فارسی واسه دو تا پیتی دارید یکی معنی زد و مخالفه به صورت پاد در فارسی است، پادزهر یعنی زبت زهر و یکی دیگه هم قیتی روانیه سر و سروره که در پادشاه باقی مونده از یه طرف به صورت پیشاوند و به صورت بعد در بسیار کلمات سپه بد و هیربد و موبد و و امثال اینا که بعد هم کم کم میزوینیسای دوره خاجه ها بعد دوره پهلازی فکر کردن که این بعد بده آقای بود و هیچه با اون بعد زده خوب اشتباه نشید در حالی که ما سنت داریم این بعد تلفز شده بدون هفتی چی گویی و این تصورم به نظر من خیلی ساده است برای اینکه مگه شیر و شیر با هم اشتواه میشه یلی چی خریدم آوردم خونه فکر میکنم که شما شیر درنده رنده آوردی این اصلا چه تصفیر بی خودی؟ بعدم هم همطور، یه بیتی شا در شاهنامه فردوسی که میگه شما فرداشت پر پردزه در, در در داستان سیاوش که بالاخره سودابه تحریک میکنه شوهرش تابوس رو که من این پسر طور میخوام ببینم نمیاد که نمیاد ببینه چرا هرم نمیاد، یه هاشم بره یعنی بو مرده بوده که این رفتن به حرام سراینا آقلات خوشی نداره مثل که یه چیزا یاد میگه که نه پردو تو با هیربد یه برو حرام میگه تو برداشت پرده در هیربد یا آقش همی بود ترسان بعد اگر بخونیم بود این شعر خافیه ندارید برابارین به طرحت نه در روزگار فرزوسی این هیربت و سفهبت و کوهبت و موبت و امثال اینا بسر میگفته حالا هم که موبت میگن یا موبت دیگه اونو موبت نمیگن اون یه عیبه دیگه, دیگه پیدا میکنه برای که او با او درست نمیشه اینه که اون دیگه منطور شده موبت یا موبت پشکاری پیدای نکرد و حال موبت هست موبت یعنی رئیس مغان مغم او این قبل از دین زردوشتم معنی روحانی بوده ولی روحانیان دین داشتن در اسطلاح لعقل در عدار فارسی مغ میگن و مغان چیزه هستن اسطلاح ارباب مذاهر ایرانی هرگانا یعنی شاید کسانی که به مذاهر دیگر ایرانی هم بودن شاید مغان میگفتن ولی بیشتر اه چیزه اه الان هم که موبت میگن رئیس یعنی روحانی دین زردوشت میگن موبت در موبدان موبد که رئیس کل دستگاه روحانی بوده در روزگار ساسن بعدان بعد دست اوته کنم روان را سوی روشنی ره کنن نخست دالت جنگ را دسته من اینجا در مورد حوشن که اینجا حرف می زدیم حرف کردم که آهن رو اول وار بشر قبل از که استخراج کنه از آسان تنگ ها به دست بوده بلی خب خیلی به این هم چیز نایابی بود هم چیز آسمانی بود و اینکه که از بهشت اومده اون این تو در قرآن منعکفه و بعد هم در نجیب چیزی وقتی از آسمانیات خواست غیر ترین و ماورای ترین برایش قائل بودن و به این دلیل جادو اینا ارض کردن اینو قبلا و بسر اونه میخوام برن به این جشن صدی که چیز میکنه بحث میکنه که دکتر خالفی اینجا چیت کرده گذاشت توی الهاوی. عرض کنم که اول میگه که نخستین یکی آتش آمده چنگ و آهنز آتش جدا کرد چنگ سنگ سر ماهی کرد آهن آبگون. که زن آن سنگ خوارا کشیدش برون چوبشناخ آهنگری پیشه کرد گراز و تبر عره و تیشه کرد بعد دوباره میگه که یه روز مار چیز شده بود و از که ماره جست و فلان بعد از این یعنی یه جای نامربوطی وصله شده اون داستان جشن سبه که قبلش معلوم میشه حوشنگ یه حتی آهنم از سنگ بیرون کشیده بعد وقت تازه دوباره آتش کشف کرده این است که به این دلیل میگه الهاب و هر حال اینجا میگه نخست نخست حالات جنگ را دوران جمشید تخصیم میشه به دورهای پنجاه ساله و از تحولات بسیار عظیمی از نظر مردم شناسی در این روزگاه رخ میده که کار پنجاه سال و نمیدون سه سال و هزار سال و اینا نیست شاید ده هزار سال پول میکشه این جزیات که با شاید کولمال کولمال خودشوب برسون این مراحل ولی خب اینجا اینا رو مرتب کردن درست کردن میگه که اول رفت درامه حالت جنگه را برای دفع از خودشون برای اینکه وقتی که جامعه بخواد مستقر بشه یه جا دوستان منتظر نشستن این کارشو بکنن و گاووزن درست کنن و زمینش به کار بیامدن برن یعنی که باید نزد که اولین کاری که میکنه نخست خود جنگ را درست در نامجستن به گردان تپد نامجستن یعنی شهرت بلدی و نام شهرت نیکوست اضافهر اسم نام یعنی شهرت نیکو و نامجستن یعنی نا اسم براوردن در فهلوانی رو به گردان تپد به فر نرم کرد آهانا چو خود و ذه کرد و چون جوشن آه ذه و جوشن با هم فرق داره منازم سرمید زره زنجیر بافتر حتما تو فیلمات میدهد میری زره هم او رو اول لباس چیز میخوشن بعد زره رو بعد روش جوشن آهن های که که که بافتگی و اینجوری که از احوال رستم میگه تردوسی میگه بعد از روح هفتانه بعد به بیان روی جوشان تنش میکرد که اون به صلاح کاردم کرد اما معمولا خفتان ابریشمی بوده و زیر زره و زیر جوشان می و اگر شمشیری چیزی از اونها رد شد این ابریشم اولا که نرمی و گژمشو مقاومت فوق العاده اش که بدن مجروح بشه با اون چیز بدن نرم دیگه در وا آهن که نسبتی نداره بعد داغ داق میشه تو آفتاب بعد از جلون بگیره بر برای هزار ددیل تو کتاب های راستان های عوام هم که اول درهای نرمی و گرمی هم فیرهان حریر روی هم دیگه بعد بعد بعد میگه هست دیگه. خطان همونه زیر ولی ببر بیان ها رفتن در روی لباسش بپوشه و مفصلا مقاله مفصلی هم در همین کتاب راجب ببر بیان هست که هفتان روزن نه زره اون, اون چیزی که با زنجیرهای بافتگی تهیه میکنن و طبیعی است که هرچه بافتش ریزتر باشه مرهوبتره و میدونید که صنعت داود پیغمبر مرهوب بود که داود آهن دستش که مونر بود و زره و در بعضی داستان ها نفع شده که زرهی که داوود ساخته بود دست پران پهربان رو دید به هر حال اون مطلب رو بدهیم کنار ولی به طور کلی زره بسیار مرگوب خوبی که چیزی می شده معروف بوده به زره تنگ حلقه داوودی زره تنگ حلقه یعنی چیز باشه دیگه جرز و باشه و از این خیلی گلو مثل هر پارچه ای باید بافتی که هرقدر ایز بافتر باشه و در ایزتر بافتش رو به اینکه و بافت سیزتره و نفیزتره بیده همه فر شاهنشاهی بیده فر شاهنشاهی بیده فر کیان. و اصلا کبی در اوستام اونی پاچهان به فر پاچهان به فر کهی نمز در راهنها این الف هم گویا هرز کردن بشه میگن الف اطلاع علف اطلاق میگن برای اینکه هیچ معنی خاصی نداره برای آهنگ دادن و زیباتر کردن بیت میاد را با ها ملک و شعره ساخته ها را آمده شد دیتی چیزی دی گرگونا با رنگین شد از خیبی و ها رده بستند در گل ها و اینکو جامعه ها و رنگین چون لشکر نافلیونا ترخ، گل، خنده زد و مرخ شباوی، از برای روز عرص تا به لب جیهونا الاخر این الف اطلاقش میگن الف های دیگر هم داریم یکیش که الف ندا که همه میدونن یکی دیگر هم الف تعظیمه الف تعظیم مثل جمعه چهار مقاله یه بزرگا مردا که بو علی محسوس بو علی سینا بود. بزرگ آمرد ها, ها که بودی بود یعنی برای تحدیم دیگه سفر که این هم سردهان ها چو خود و ذره کرده چون جوشن ها چون خفتان و چون سیگ و برگستوان برگستوان ذره هست تو تصدیر که در جمعیدون جنگ هست اینا میبین دست که برگستوان پوشونده همه که هر پیدا به روشن بران بدین اندرون سال پنجاه رنج ببرد و از این چند دنها گنج دیگر پنجا. دیگر پنجا جامع کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد به و پنجا دو بندیش کرد, کرد. کرد. که در هنگام ننگ و نبرد ننگ نامه میدون که نام شهرت نیکه ننگ شهرت بده و معمولا فردوسی ننگو نواز رو هم میاره یعنی که ننگو راست کنه در حقیقه به کستان و عبریشم و موی قز قز باستش کج محرابش قز کرم عبریشم کرم عبریشم و میگن دوده یعنی که دود و دوگه به عرب بعضم معرب کجه از کردم برای اینجا عربستون که عبیشم نشن درخت توت کرشتن اصلا کرم عبیشم نشن عبیشان نشن نا چهار وقتی یه چیزی میاد اونجا اسمش هم باش میاد دیگه همینجور که الان تو ترانزیستور و میاد اسمش هم میاد این از که قرز آمد دود از الگز یعنی کرم عبیشم و جوز الگز یعنی پیله جوز یعنی گردون میدیم جوز الغذ یعنی پیله میگه که جامعه شروع کرد درست کنه از چی؟ از کتان کتان گیاهی هیر سمخهش دارای علیات بسیار نازک یکی دیگه از این گیاهانم شاهدانه یکی دیگه از این گیاهانم شاهدانه را بود میدونیم کنف بهش میدونیم شهدونه علاوه بر اینکه دانش از بهترین دانه های روغنیه روغن خیلی مفصلی داره و احل هم به هر حال بهش دل بسیدی داره نظر معشجات و اینا هم برای خود داره که نوع خوابی از شهدانه فلسه شهدانه هندی ایندی که اتگه ساقش هم یا ساقش که برن میشه توی این ساغه به اون نازکی که دیدیم بگو مثلا سی تار نازک مکم زریف پشنگ هم داشته اینو اون ساغه ها را میذارن باقی چیز داشت میپوسه این تاره ها را چیزی که پوسیدن نداره یا ترتیبی دیگری حالا سریع تر میزارن نمیدارن می و گونی که و گونی که این علیافش آزم و البته نخهای بسیار زریفتر هم داره که میشه. کنف های بسیار قشنگتری یعنی هم با افت ازش رو درست کرد که خب ما توجه به اینکار نکنید ولی کنف و هشیش و هم بهش میگن کنبین اون ماده, ماده محصری که در هشیش وجود داره، بهش میگن کنبین که میگه ماده رزینی شکلی که فرمونش هم معلوم نیست یعنی دو از نارف اسلام هستم هنگه کسی میخواد توجب کنه اونجور رو جبو کنه به هشیش نیرهش عرض کنم که کنب و کندین و کنب ایندیک و کندیست کنب این شادون کتونم یا نظیر او تقمش تقم روغنیست خامله ساقش هم, هم چیسته ساقش هم علیات برشدی و علیات شادونه بعضش کتون می کسن بهترین کتون دنیا هم از مصر می آمده همه در مصر پنبه که میدونید او هم منشای گیاهی داره منطقه او چیز نیم او ساخت نیم او او زد برایی بر. تخم پنبه هست و دوقه اون تخم پنبه یه مزاری علیاف و بسیار زریف نازو کشت میدین تخم پنبه از دانه های بسیار, بسیار بسیار غنیه و این روغن نبوتی ها اقلا روغن تخم پنبه است. اون باقیش هم اون توفاله که میمونه همه این چیزا همه این دانه های روغنی اون توفالهش هم که ازش باقی میمونه جد بهترین خوراک داره دامان برای که چرخاننده تحقییتی خیلی دریجه یکی به استثای که تو که میمونه برای آدمیزاد مصرف میشه و میگن روش ارده ارده که باشن حلوه ارده میسازن یا ارده و شیره میسازن ارده که اینجا هم اگر یه وقت بخوان دخنین بشین گرن تهینه برای که تا به عردی با تا معلف و ایوتی تا یعنی آسیاب و تهینه یعنی آسیاب شده کنجدی که آسیاب میسنن روغنش میگیرن باقیش که میدونه خیلی سرشاری داره بسیار چیزی ارزش چه زیادی داره. اینکه این که گذشته با هم فقیر اینا هلوزه میخوردن با نون و جوابشون رو میداد هم به دلیل وجود اون پروتئین زیادی بود که در کنجد نه کنجد روغنش هم خیلی گرونتر از اینا و هم این که اه... توفالش رو به دام نمیدن ولی کنجله یه رو پهمه و بزرک و شادونه و تخم کتون و اینا که با دانه های روغنی است اینا همه رو درست میکنن برای دام و اولوثه خیلی خیلی باید بشید حتی ایک از دانه های بسیار بسیار روغن خاشخاشی روغن خاشخاش خوراکی نیست در نباشی بکار میده بگذارید حرف که ده کتان و اپریشم و مول قض غصب کرد جامعه کتان به معنی هم هست به معنی جامعه کسانیه میگه که در تعریف شیرین میدونید که گفتن که کطان گویا گویا خرافات ولی به هر حال این اعتقاد رو من کتاب سيفوان هست یادم کتاب سيفوان وزارتینه نوشته بود که گویا کتا... کتان در ماهداف میپوشن تزامی در شهر میگه گزه ماهش سب را رخنه یابی یعنی مثل صورتش تاوش ماه رو داره و علاقه مرادش از اینکه قصب رخنه پیدا می کنی یعنی آشه ها را رخنه یابی شما هاش رخنه و روح نیابی برحال قصب به منی جامعه کتانی که کتان و عبریشان همون یه قصب قصب کرد و پرمای دیبا و خل دیبا هم پارچه عبریشانی کلوسته اینی که الان بوم نرکاشی اینا کار میبرن پارچه های الان الان در یعنی سال های قرن هاست، در ایران عبریشان ممرخوبه کم قیمت توش میگن کج یا کج این که شده قلب و یه مسئله هم هست که میگن مثلا واسه میگن که فلان چیز کجه مثلا چوبه کجه به هم جا هم فرولانزان میگن کج بنات عبریشم یعنی <تصحق> <تصحق> نوعه یک کمتار مرگوب عبریشم کج و کج نوعی بوده که همین پرچه های نخطفن کلوفتر و که مسارف عملی کرد یعنی جمعه زینتی نشتوشی جمعه عملی نشتوشی بیشتر اینا رو با کج می و دیباقش می گفتن پاچه باچه عبشمه کلو و استبرک استبرک یعنی صفحه عبر شده شد و قرآن هم آده اونم باچه کلو فردشم هر اسم جانوری پستندار که پوست گرم داره یعنی پوستش موهای خیلی خیلی نرم و خوب داره و خیبون رو این سامورایی که اینجا با دومشون گردو میشکنن و حس که این بر اون رو میاند که اصلا حرفشون نمیزده اینا رو نهستشون رو هر این در قدیم تمامشون رو پوستون از سرشون میکشتن و پوستین سامورو، رو همسای نداره برای دکتان عبریشم و موی فضل تصبت کرد و فرمای دیبا و خضل بیا موخشن رشتن و تا اول ریسیدن ریسمان و تابیدنش بعد به تار اندر پود را باستن تار نخواه طول پارچن و پود نخواه عرج و این حتی در اصطلاح در استلاح فنون دیگر هم همینطور مثلا من نجاجر که ازش مختصر اطلاعی دارم اگر از راهشو راه انتهای دره ببره اسمی یعنی ببره اگر از راه دیگه بخواد ببریم میگم غلطه اولا شاید موقع رندینه اگه از راه انتهای تو برن میگن برن اگر بخواد از اون راه رندی میگه راه پود برن راه پوده البته را میگن راه پود برن راه پود برن, برن یعنی از راه پود یعنی از عرض بنابراین حتی برای بافت پارچه و ساب بافت چوب و گیاهوینا پار و پود مستلح اوه خیلی وقت ما گذاشت دریای یعنی همه همدودش موج میزد بافتن چه شد بافت شدتن و دوستن گرفتن تار و از او یک چون این کرده شد کهاز دیگر نهاد اینا همزمان اتفاق می آسدن ارز کنم در همه ها و ازاره هم تول می کشه اینجا مرسب شده اینجا. زمانه به تو شاد اون اونید شهاد در هر پیچه ای که از مرد بدینن در اون پنجه اینید کرد اینجا تقسیم جامعه به سبقات قبلن باید ارز کنم که در تمام اجتماعات باستانی از جمله در هندوستان که به کلی باقا یکی بوده سه طرق بیشتر یکی روحانی یکی سفاهی یکی هم تشاور و همه و اصلا تحسیم طبقات سیگه طبعا. حالا اینجا بعضی ها خیال کرده این جیناس فیعت داره که مثلا یه روزی جمشید اومده یه اتیر جمع کرده بعد گفته خب شما سه نفر روحانی باشین شما سه نفر هم باشین شما سه نفرم هم تشاوردی کنین شما هم بگیم کاری باشین خواهنگری و حلابیتو اصلا چند این چیزی نمیتونه وجود داشته باشین اول افراد وجود میان در جامعه کارها، مشاخل، تحصیبات وجود میاد و اتفاق میافته که گاهی افراد طبقهی به خالص میکنن در کار طبقهی دیگر اون وقتی که قدرت مرکزی اگر این کارو صلاح ندونه مرز هریکی از این طبقهاتو که قبلا پیدا شدن این میسنم در اینجا همینطوره. یعنی در روزگار جمچید طوری بوده که باید مرز در ایران او باید استثنان از کم که دارد ولی در همه جا این جامعه شناسی و باستان شناسی خدیم و مردم شناسی اینا رو که میبینیم صنعت و دستورزی به قول فیضوسی هنوز به جایی نرسیده بوده که بشه به صورت یه طبقه ازش گوانی بود و سپاهی بود و اون کشابت. در این روزگار که میگه اینا رو تقسیم کرد یعنی این چیزی که وجود آمده بوده وگاهی تداخل اینا در همدیگه اصول زحمت میشده که تا آخر هم شده موغان زمینداران بزرگ بودن بعد از زیر مالیات در میرفتن نمیدون پدر رعیت در میاردن و همه اون کاری که باست میکردن نتیجه هم اون از سخت از عرب ازامی همین جور خلاصه داستان این کوشش باره که این طبقات رو تعییم بکنن درست بکنن یه بزرگ مردی فکر کرده بود که زهال ما طبقات اصلا سمزه این برداشت و بعد دوباره بعد زهال جمشید اومدی گفتش که مقالط کرده مردی که اینطور برداشتی دوباره طبقات رو بشترد آقا آدم داره چیم بکنه که میشه همچنگی میشه همچنگ علاوه از اینکه اینا اصلا اصاتیره هیچ نحوی با, با, با تاریخ و با حوادث تاریخ اینه قابل تدبیق نیست زحاک عجده هاست حالا می‌رسیم عجیده هاک سورا می دیگر رسیم در عوستا میگه عجیده هاک سه سر ششبوزه دوشانو هم بقایای این دو سر دیگرش هست که سر شون مار دارون سه سر, سر. این نفیل آدمیزاد نیست که بعد میشین این بحث رو که این شکار کرد یا آدل بود و حالا پردوسی سیاش کرده ظالمش کرده این روزگرد اینا نشونه پرت بودن آدم از اصل غذایات که به کلی چیز دیگری و نخوندن یه دون رساله پنجا صفحهی مردم شناسی و این از ها یه خورده ببینه که این بشر چه جوری این راه دور و درازستر قبل از تاریخ قیموزه تا برسه به،, به ساحل تاریخ در صورت میگه که اینجا برتر این مطلب زهر هر یه انجامن کرد مرد قارب این کارم میگه پنجه سال بحث رفت کرد که جامعه رو طبخاتش رو که باز تکرار میکنم حد و مرزش رو مشخص کرد الان پیش آمده بود قبلا هم نمیشد که نباشه گروه این اسم این طبقات هم در شاهنامه ها بسیار بسیار تخیف و تحریف شده و حالا خبا پدر خالا گریفی همارز اون اولی گروهی که آسوربان خانیاش شده کاتوزیان گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دارنش و الان خانمون اسم خانمونی که کاتوزیان می میتونید که بسیارم بعضیشون مردمانی با استعداده در جیه کی هستن بلی کلمه تحریف هستن آتوربان یعنی آذربان یعنی آتشبان نگاه دارنده ی آتش گروهی که آتوربان خانیش به رسم پرستندگان دامیش آتوربان یا آتوربان توسه دادالش به هم در فارسی واصلن هرچ نزدیک خیلیه آ طور واسه برای که ازارم اون زالش و زال تلفظ میشه مثل ز تلفظ نمیشه اردش دقیقاً مثل تی اچ انگلیس دارن باشه که آ آزربان آذربان خانیش به رسم طرفستان بگان دانشش کسانی که در راه عبادت می رفتند گفت اینا جاشون تو کوهه هنوز هم در قصه ها که عابدی بود در کوهی داشت عبادت می کنید تو گلستان سعدی هست که عابدی اونجا بود و پاچه ها رست و مرش داشت آورد و گفتش که بیا او گفت نه میام و گفت و چند روزی بین اگر که فکر کردیم که خیلی هم این چیزو ساخته این رو گفته و خیلی خیلی قشند اگر دیدیم که صفایی دلتون مکدر میشه اختیار باقیش میتونیم برگردیم سری جا آبد میاد میاده میشینه و تا همه های خوردن گرفت و یا جا شکنش کشتون نو والا میاره و هیچی کلی قضیه رو پراموش این از که این مسئله که اینا در جاهای دور افتاده انوزم بهیرهای محصیهی که کاملا روشن که تا چندی پیش به کلی اصلا بیمشن و ما نبیاهند خلاصه جماعتی که عبادت میخواستن ملکنن دل فارق میخواستن و خیال راحت و این رو غالباً در جاهایی بوده که چیز نبوده و مردم با چه تشریفات و آدام میرستن به زیارت اینا ازشون برکت میخواستن و حمت میخواستن ولی اینا نمیومدن به دلیل اینکه اگر میومدن وارد مردم میشتن دلیل همین احترام آلودگی بهده میکردن هلالوی که سر خودشون رو بخاره قدر مردم هم در می آوردن که شد گروهی که آسوربان آسوربان خانیش به رسم فرستندگان دانیش جورا کردشان از میان گروه طبقاتو درست نکرد آسوربان بود گروهی که آسوربان خانیش به رسم فرستندگان دانیش جورا کردشان از میان گروه پرستنده را داگه کرد کن طب بفند اونجا به دعاگوی وجود اونگاهی که ما مشغول بشین صفی برکشیدند و بین تو شانامه معمولی است. صفی بردگرده است بین شاندند حالا مهم نیست صفی برکشیدند و بین شاندن همین هم نیساریان خواندند مردم دوست المهین در هواشیه برخان قاطع حد زده از که این کلمه رشتاریان باشه رشتاریان به جای نیتاریان و رشتار مخصص به این کلمه ارتش همچیز محسکی است درسمت کلمه خشایار میگون پاچه های هخانشی اسمش خشایارشاد و جزء دومش آرشاد اشا شاه اینا خیال کردن که خشایارشاهه حالا بنده که شاه نیستن میشنم خشایار در حالی که اون قسمت اول شاه یه یعنی شاه یعنی احرار رو گفتم وقتا می کنمی دفم بریدن همینطوره ارتک بلکه ارتشتار بخش اولش ارته ارت در عبستایات رسه با همون انگلیسی راسه. راسه. که در فرانسی داریم رو ر او یو ای یعنی چرخ چرخ رسه اوشتر یعنی ارتشتار یعنی دو جوزش جوز عفلش ارد که ته... اگه بخوان دونست کنم شوز هم میشنم ولی خب گذاشتن باز اردار اون وسط اردهش دروس گردن دوزن بود از این حسابانی بود این چیزا از این عملیات اینجی رو ریشتاریان محاسف معنی گردون سوا بنابراین لغب فاتره که میگفتن بزرگ ارتشتاران پرمانده اون درست ارتشتاران یعنی گردون سواران بزرگ ارتشتاران هم یعنی رئیس گردون سواران اون درست ولی ارتش اصلا بسیار کارش اصلا معنی نداری ارتشتار رفت ایشتره حد دادن که رشتاریان باشه ولی در هیچ نسخه ای رشتاریان نیست نیستاریانه که معنی درستی البته معنی کردن نیتاریان و همون سپاهیان ولی باید چی ندارید صفیه برکشیدن نوبل شاندن همین هم نیساریان خواندن کجا که کجا و منی که شیرمردان جنگ آفرند خروزنده ی رو کشی کردن دفتر زمان، من نمیدونم، این کلمه تعریف شده است آنیه، خاموش گیر هستی؟ آله، فهمیدم، من نمی‌دونم، نمی‌دونم. نخیر، آنی نه، تکان آنی هست. از ایشان رو با وقت تخت شاهی به پای، از با ایشان وقت نامردی به جای. <متحد> مطلبی نداره. با سودی، سدی گر گروه را دو نیست از کس بر ایشان صفح اون در یعنی مننت از کسی ندنم خودشون کار میکنن خودشون میخورن و فرزنش از کسی نمیشنن پسو پسوگی و بسوگی که اونم تو باشی براه الان یارم رفته که چیه؟ که اونم مرمون به شما این پیدای کرد اصلشم توی تیز دکتواش نزدگی اصنا و تأثیران در عدد فارسی بحث کرده اینام پیده کرده که کشیه و یه حد سیزده البته حال این داره این که شاورزان ده که گروه صرفامه و گروه از همه قدرتت و وسیطه من یادم حسین ملک برادر خلیل ملکی که همین جامعه شناسه و دنبال این بازی هست و لمن صرفات و, و تو هند مطالعه دقیق کرده و متحصه کشاوردی از در اون نصف کشاوردینا متعلقه در ها و از که بهش گفتن که در تیزوشی جمفید که هاسترافی کرده خیلی تعجب کرد کنبان هر چه دیدم ستا و همز تا که و راستشم بخواید درسته هنوز پیشه شهری و صنایه دستی و درشت به هم هنوز هنگی بوده آهنگر و مدجار الان تو ده همه همی که نداره که آهنگر که نداره هرکس این کار خود تهمیر میکنه اینست که این خیلی بعد پیدا شده صورت کراقات ابتدایی اجتماع ده. نبوده در حالی که روحانی و سپاهی قدیم ترین هست به دلیل دفاع و یا حمده هر دو سپاهی لازم داشتن روحانی هم برای اینکه هیچ روزی الیات قول الیات هیچ روزی بشر بدون دین در روی زمین زندگی نکرد آرات البته اکتری هستی باشه اینکه بیگینام خودشون جوب دین دیگری دارن دین بی خدا مثل کمونیسم مثلا که اونم کیشه، اونم دینه ولی به هر حرف کنم که بس او بیس دیگر گروه راه شناست کجا اینکه نیست از کس بر ایشان سفاد یعنی کسی نمیتونه بگه که بیان مجلیز ما رو بگیم و تشکر از ما بکنیم یعنی کسی عقلی بگردنشون نداری بکارند و ورزند و خود بتردن ورزیدن و نیفتار کردن و بکارم که کشتن ورزیدن یعنی کار کردن رو اون کشتشون بدرفندم از مستر درودن، درودن و درزیدن یعنی کردن سهر بسیده ما الان محاکب شو درو کردن میگیم ولی قدیم درودن میگفتن این درو کردن حتی شهریار به کار بوده میگه ای درزت تو ببین به این سنگ مل این از این خلعت خاصی کار بدنام این هم خود تو روده نه تاری به جامان نپودی من از فکر احسان تو بر نگردم خدایا مرا بارها آزمودی بسازم به سوزی که از آتش وی نخواهد به چشم کسی رفت دودی چه سوز از جهانی که در وی نباشد نه آقای چنگی نه گلوانگ رودی چه و چه و ته بعد میگه که تو ای نمیدن فران چیز که بهدار داست زمین کشته آدمنی به عجل کشته آدمی ورخید به به کشت زمین دانه آدمنی را نکشته به داست مهنو دروزی دروز. کجا بکارند و ورزند و خود بدروند بگاه خورش و فرزنش نشدوند آقای خودشون نوکر خودشون ز فرمان تنازاده و یعنی تحت فرمان کسی نیست تنشون آزاده از فرمان تحت فرمان کسی ز فرمان تنازاده و خورده نوش نوش باید نیست. حتی در زبون ارمنی که دو زبون های ایرانی و زبون های آریایی است یعنی شیرین و نوش اصلا معنی شیرین ولی به معنی مجازی چیزی که به دل آدم شیرین هم باشه به اصلاح به بهش اون هم چنان که میگن نوش جان دیگه این خورده نوش یعنی چون ساعت فرمانی کسی نیستن و کسی منت سرشون نمیداره هرچی که میدارن یه لغانی که دارن با دل راحت میخورن و به سنشون میشه. تنازاد و به فرمان تنازاده بخورده نوش از آبا یه پیخاره پیخاره نیست فرزنه میشه کم کم شده بیخاره این صورت خیلی قدی میشه آسوده گوش تنازاد و آباد دیتی به دوی از داور گفته بود جنگ په سخنگوی آزاد مرد که آزاد را کاهلی بنده کرد و که خواندن که خندن از دستورزان با سرکشی دستورز یعنی اهل صناعت اهل صناعت پیشورد نمیشه گفت برقای شخال هم میاد جزش سن از که در یعنی از کسب واضری داری اینم معروب این گفته که هو تخشانه هو تخشان و هو تخشی به همین معنی سنتگری و درست وزیر و هو تخش و هو تخشی جده احتو خوشی کجا کارش هم همگنان پیشه بود رب پیشه اینجا منی صنعت کرده روانشان همیشه پرندیشه بود بدین دین اون سال پنجاه نیست بخورد و بورزید و بخشید چی؟ پنجاه سال طول کشید که حتی مرز هریکی از این طبقات چهارگانه رو تعیین کنه و بعدم مال بشونده یعنی خرجی که لازم برای این کار بکنه که این جا یاد کجا نه خیلی مسئله مسئله آزاد رو کاریلی بند کرد. این ارسال من ممکنه کسی هم باشه نه ولی بری معمولا مسئله این تمثیل یا مسئله معمولا مسئله رو از قول کسی نرمان این کسی ناشناسی مثلا میگه که چه نیکیو چه نیکیو گفت موبت با سپاهی کدوم موبد و کدوم صفاهی خود هم دونه چنی گو گفت موبد با صفاهی تو شرمت نیست رو آن کن که خواهی این تو شرمت نیست رو آن کن که خواهی یکی از تر آب رو گویشتی یکی این این مسئله آفزاد را که آلی بند کرد مسئله و اینجا از خبر سخنگوی آورد از این هر یکی را یکی پایگاه تذابار ببزید و به را که هر چه اندازه پیش را ببینند و دانند دانند را اینجا که نشون میده که 50 سال وقتش صرف کرد تا اینکه هر کسی اندازه خودشو را یعنی حد و مرز این طبقات و حدود مسئولیت و حدود صلاحیتشون شون طبقه رو کنه چه به رو بود که تا از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بلزید و به را که تا هر کب اندازه خیش را ببینند و دانند کم بیش را بعد میگه که به کار دی و دیوان که تاست فرمانش بودند بسیار داد که بیان و که ملازه فرمکی بی بار بزنن و خشت بزنن و از گچت بکار ببرن و همم بسازند و دست بسازند این باز نشون اینه که اقوام آریاییی که آمده بودن فرط تمدنشون از فرط اقوام که در ایران بودن پایین تر بوده و اینا رو بادار میکردن به کار گرده این یکی دوبام این که من یه وقت توی هزاری چند یه قصه میخوندم اواخر هزاری چند او از قصه فاطمه عره یا فاطمه عره که بعد زن فلیته ای اونا میگن فاطمه عره همون بسرد یه مردی بوده و ارز کنم که دلک بوده و مرد بعد وقت کندرهادی زن فلیته یه داشته در هم فاطمه عره بلاخرد دست میگذاره میگه یعنی راه بیابه میگه طاقت نمیگه تحملش نمیشه تو می‌گه می‌رسه به یه شهری رسید دید که مردم اینجا آسان همون نداره بعد اه... چیز کرد سب چیز شهر رو من همون می‌ستم همون چیگه گفت خیلی خوب چیگه من مثلا تضمین می‌دم که شما خوشتون یاده هست کنیم زده‌تون می‌ستدان هستیم بعد رفت همون ساخت در ساتون ندارم و همون ساخت و خزینه گرم و وساط و بعدم شهر آبود و مجتمع تمیزی داد و کیسه کشید و خوشن صابون سابون زد دو خلصه شهر آمد کرد و خیلی کاروار این بالا گرد من اون وقت فکر میکردم که آخه این این انصوری که این داستان سر آبو کاروار مزخرافی کنی میشه آدم همون نریشت بوشی تو ممکنه همون نریش بوشی تو پاکستان <تصفيق> در فاکستان همم می مردم تابستان که میشه زیر این آبای لوله کشی تابستان چونه یعنی میشونن و میرن زمتونه آبا سرد بشن یکی دوبا میگه تو سلمونی های از جهنه بشه گرم همم هممم گرم هممم گرم چیه یه جای نیم متر نیم متر اول حسابات پردستی خونو سرمونیم یه دونه از این منابعهای پیشنسینیه علایی تا آنتی‌تی دام بالاستونها می‌ذارن پر میشه پریموس اینا گند میشه مرتی که میره سرمونی میکنه بعد میره اونجا خودشو گربشور میکنه چیزی میده میاد بیرونم گرم حمام و کل عمو اینه البته تو خونه هایی که ما بودیم یعنی برای دیپلماتا بود یا برای اروپایی‌ها بود یا اینا بوده و اینا عجب این هستی مثلا 200 سال زیر استعمار انگلیتسا بودن مثل آب و روغن با این مردم قاطی نشدن یعنی هرگز دفعه میدونم که همون رفتن که بعد میسوش که به هیچ فتر شدی و اصلا نیست ندارن تو خونه هم یه جای دارن به هم گفل خانه که نمیتونن میان لفت موجود این گفل خانه یه سراخیست مثلا فرق کنید یه متر و نیم در نیم متر یه جایگاهی ببخشید خیلی اوزمه های های قدیمی ما بیادتون هست که به جور میشیدن اینجوری گوت دو طرف فرشم سراخ بودم فرض کنید اینو نصب بکن و کنار دیوار کنار دیوار رو مثل یه نصف به مسترهای قدیمی مستفرن فرشم یه سراخ انقدیس ما میشه به کوچه تو کوچه هم جوب و آبی هم میره اینجا ببخشید اینا غذا حاجات میکن با باابان خودتون نمینشن چون بر مذهب هنفیان و آب از نظر تاثی در نطع سوون اول عرض کنم که رختشون اونجا میشونن آبش میزنندیه میشون. حرفشون اونجا می آبش هاش میزن میشون. همون هم بخوام برن همون تو میرن مین یا آب میزن سرشون آبش میرمون تو. و کوچه کوچه ها باریکه، کوچه باریک به کوچه پنتر کوچه پنتر به کوچه پنتر تا برخواد نیست به خیافون این جوبه هم اول باریکش انگده بعد کوچه پنتر که نیست بزرگتر میشه این آب و اون کسافت و اون گوه و اون آب زرد و چرک لباس همه اینا با هم قاتی میشه از ده قدم کرد این آب به همه میشه دیگه قاتی میشه به صورت یه آب متحفن کسافت سیارن و همینجور میاد تو خیابون تو جوبای بزرگ که خیابون روش هم از اون زیر میره و بوی تا هم چونمار آزار میده بایه هم یه شاخه چوب یه چیزی گیر میخواین آب میزنه بالا میخواین تو خیابون تا <تصفيق> این که وبا همین جور چیز میکنه اونجا سر بلن میکنه هر سن سال به این دلیله در حال بعد من به چشم دیدم که آه همه همه نیست من این قصه ایون بدبخت این نوا گفته بنده علت دنیا ندیدن دنیا و اینا فکر که این خیلی عجیبی عجیبیست اصلا عجیب نیست و هنوز که هنوز این نیستش خلاصه قصه خواستی میتونیم بریم بخونین و این, این از که اینجا میگه که گرم آفه ساخت و ایوان ساخت اونو خیلی حیرت نکنین که خوام آریا گرسی هنوز یه ایش که هنوز اون یه هنوز هنو بعد و این هر پاونده ارز کردم و تو رجوع گرما به اونا هرز کردم برای اینکه سر مطلب دستی یاد دوباره گفتم که از, از لطف بکنن بخونن بعد میگه که به فرموند پس دیو نافاش را, را, را. را به هر پاونده خاک را البته بر حقیقت اینا رو به کار بوده و این علم و خودشون داشتن هرانی که از گلامت رو بشناختن سبوک خشت را کالبت ساختن خشت من یادمه که یه وقتی این مختبات و این جاهای اطراف خیرون که میساختن خونه های مرزم میرستن مینوشستن پیت های درزینه رو توس پر کاج یا گل میکردن میذاشتن رو چه این دیوار زود بیاد بالا. این فایده نداشت اینکه این خشت با تا مغزش خوش بشه وقتی میچینن این خوش که کاملا اینجا اوک نمی کنه. ولی وقتی که تو پیت میزین بزنن اولا که بارو میزنه اون زن میزنه تا کور هم کورده موشت هموش بعد این مغزشش و خوش نمیشه که حالت اینجا این کار دیواره نمی‌کنه. کنه این مسئله اینکه که این خشت رو بزنن تمام نازک اون اندازه توی آفتاب و بچینن روی هم. البته که اگرشون مرزه دو برابر کلوف ترند و روسان ک برابر کلوف ترند و روسن ولی نباید می‌کردن تو چه مر... هر انتز گلامت تو بشنافن صبوک خشت را کال بد ساخت کلمه یونانی است اصلش و در فارسی شده غالب که در حقیقت غالبم هست ولی خب در فرسی قالب میگن و سعدی هم با اون یکی قالب و با قین روتاشو با هم قافیه کرده چه طبع مخالف سرگشت هند روزی شوند با هم خشت چون یکی این چهار شد قالب جان شیزین براید از قالب ولی این قالب با اینکه که شبیه اسم فاعل است و فکر میکنه آدم در از در قلب آمده بشونه هیچ ارتباطی به اون نداره همین قالبت به سنگ و دیوار کرد عرض کردم کردن به عنیه ساختن و عرض کردم که معنی های متعدد داره فعله کردن یک همینه به خشت از برش هندسی کار کرد هندسه محرب کلمه اندازه اندازه رفته به عربی شده هندسه برای اینکه ه و علف به هم بدل میشه مثل هسته و هسته کمیان و امیان هسته پیل هسته پیل هسته پیل هسته یعنی آج هسته, هسته، همون هسته بنابراین اصخون همون هسته و بو این که اصخونه توی گوشت و بهش نمیگن هسته ولی هسته یه میوجات و بهش میگن اصخون صحبی میگه گل آگر صحبی سوی بوستان به شوخی و فلفل به هندوستان چو خورما به شیرینی اندوده پوست چو بازش کنی استخانی داره. یعنی هست استخان هم هسته یکیه و ارض کنم که سنگ رو به گچ دیب دیوار کرد به خشت از هندسی کار کرد هندسی اندازه است مهندس رو در عربی از همین اندازه گرفتن به همین دلیل هم بعضی جماعت فارسی اسم فارسی واسه مهندس درست کردن هندازمند هندازمند یعنی <تصح LS> <تصح>. مهندس برچه میگه ما بل کنید مهندس کچیکه و چرا حافظ اومده هندازمند نید که د گفت که مطال گفتیم بی مشتری نیست گروه این گروه هم پسند در هر حال به خش برش هندسی کار کرد هندسی اصلا یعنی از روی اندازه و مهندس یعنی کسی که اندازه کارها رو بلی بهده دل بگوشم از فتح یاد مکان که فکر هیچ مهندس چنین گرف نگوشم ایش از برش هندسی کار کرد چه گرمابه و که های بلند گرمابه آبه اولش گرمه درست, درست, درست ولی مثل سر جوز دومه آبه یعنی گمبت آبه یعنی گمبت و میدونید که سخت و همه ها گمبادی شکل بودی توش هم گرم بودی به این دلید میگن گرم آبه. اما چرا من اینو میگم دلیلش اینه که ای کل آوه و آوه به معنی گمباد ساوه بارسیدی امروزش میشه سه گمبادان سه تو گمباد شد. ساوه را همه دون بوده آوه آوه و آوه تالمه سرداب که در یزد خیلی یعنی زیر زمین به کار میره اغلب این آب نداره توش که یعنی که آب اگه توش جو نمیرهش مجبور باشون به هرد میگه چه اصلا نواد زیر زمین توش آب داشت سردا اون, اون جزء دومش آب نیست هیچ صحبت نداره چون فقط اینا رو در یزد انجام میدید خوب نیست و مساله یعنی ساختمونای هر ناهیهی با توجه مساله ساختمونای خود اون ناحیه تغییر میشه اگه سنگ زیاد بشه سنگ اگه آجور زیاد بشه آجور اگه چوب زیاد بشه مثل امریکا که از همه چیز چوب پیش داره تا هم ها چوبیه و در نواحی کرمان و یزد و اینجاها که چوب نیست آب نیست درنچه چوب نیست سخبار زردی میزدن ب هم ارگ بم که 2000 سال از روزگار هشت باقی مونده خشت خام با گل رو ضر می یعنی گچ هم سالا آجرار رو که ضربی وسط سیرا هم میزنن گچه میزنن خیلی زود خوش میشه میکرده. ولی اونجا گل رو بوده و خشت این ارگ و ساختنشه قف و محاسبه میکردن. طور که خود فشار وزن این اینا نگه داره و تمام فشار هم نه روی دو تا پایه حالا من قبریه میگه میگه این داره داخل معمولات میشه ولی همین محاسبه قضیه این است که اون فشار اون گمبد رو پایه هایی که ترییمدن و بتونه تحمل کنه تا این باعث طریفا و نزنه یه وقت از تو کلاف میکردن این کلط دارن که بابش از آقای همبری وده پر حتما نبرس که، گرماوه یعنی جای گمبدی شکل گرم و این آبه به عنی گمبده آب و آبه دیگرش گمبده و غیر از این این که در بسیاری جاها اصلا گرماوه هست در نسخه قدیمی احتمالا شاید در مستان سعدی احتمالا حالا من ذهنم یاری نمیکنه که بگم اون شنیدم که روزی سهرگاهی وقتی سهرگاه ایزو گرماوه آمد برون باید اگر آب باشه که دیگه آبه نمیشه کمتر میشه حال گرمابه یعنی جای جای گمبک چک و گرم. تو گرماوه و کاه های بلند تو ایوان که باشد پناهت سلامه دیگر که باید معنی کنم ایوانه ایوانه وعنی کاه یه معنی دیگره معنی ایوان غیر از این جای موسط، بخه جلو، باز حالا بهش ایوان معنی دیگرش کاخه و بله ایوان ما داریم که به قول شما دیگه کاملا مشخصه یه شعری از ساقینامه حافظه میگه که این کجا شیدن گرد لشگرد سرک خنجت کششش کجا راه پیران لشگرد این کو باید میگه نه تنها شد ایوان و ایوان و کاخش به بعد که چند دخنه اشترانه دارد بیارد ایوان ببنیه کاخه و پناه از گذن کاملا نشون میده باید جای اونجای جلوباز فقط برای تفرج و برای هواخوری خوبه برای پناه ها از گذن جمعا نکنن کاری سورت بیارد و هر جوست. یک روزگاه خارا اینجا حکیم به معنی مطلق سنگ به کار برده حال اینکه میدونیم که خارا نوعی سنگه نوع سنگ خروجیست سنگ آتش پشانی و مخلوط سنگهای خالص آتش پشانی شیش تا و اگه من از زمین شناسی سال سب و که در سال در سال 15 خونده باشم که دیگه باید نخوندم یادم باشه سیشت سنگ خروجی بود کوارس بود و آنفیبول بود و میکا بود و فلسپات بود و پیروکسن بود و پریدو اینا سنگهای بسیط آتش پشنگ لات مخلوط